از این جیگر یا جگر که به معنای سرچشمه و معدن آفریننده عشق و اشتیاق از یک سو و زندگی و نیرومندی از سوی دیگر هست از این خون پیدا میشود یعنی در خون این دو چیز هست خون در برگیرنده و در بردارنده عشق و اشتیاق و زندگی و نیرو هست از این خون هست از این آتش هست که چی می شود؟ سپس حواس پیدا می شود اندام دانایی پیدا می شود از این خون که بنکده آتش و تف و تاپ و تپش و تاپک است اینا همه معنی همه بای... پرتو تابان تابش اینها همه در فرهنگ ایران اصل آتش است گرماست. نه نروشانی از آتش درون است از این آت... هوفریان است از آتش جان از آتش جگر است تب تاب از این است که چی که روشنی پدید می شود. روشنی همیشه تو هم با گرمیستی یعنی بینش همیشه با مهر است این... از این رو خرد خرد سرخ را میده میشد. جگرم جگر سرخ است سرخ زور سوار حالا از این خون که بنکته آتش و تب و تاب و تپ و تاو است مهر در سراسر تن شعله می کشد و در پایان در havas گوناگون از روزنه‌های تن تحول به روشنی گرمی به تابش به پرتو یعنی بینش مهری می‌یابد انسان در بینشش میخواهد در جهان با همه انباز شود دوست شود این به کلی با ایده اینی که میخواد قلبه کند میخواد حکومت بر جهان و طبیعت بکند فرق دارد تا،, تا اینجا ما از خود واژه جگر راه به افکار پیشینیان خود بردیم که سپس در همه ادبیات ایران و دورهای که به ظاهر اسلام چیره بوده است تابیده شده است این را در ادبیات ایران یک دفعه به طور خلاصه دنبال خواهیم کرد ولی حالا ببینیم که جگر پیکریابی کدام خدایان است برای ما جگر یک چیز بیولوژیکی، یک چیز است و اصلا رابطه با هیچ خدایان ندارد ولی برای, برای در فرهنگ ایران جگر این همانی با خدایان داشته است یعنی خدایان بهره ج... بهره های این جگر بودهاند. این خیلی مهم است اهمیت خون و جگر را نشان میدهد در جگر کدام خدایان پیکر یابدن این را از همون از همون ای که در بندهش در بخش نهم آمده است میتوانیم جابیم. گاب نخستین برای ما گاب, گاب و گوساله و اینهاست ولی اینها گاب نخستین مقصود مقصود همون خوشه همه جانها در نخستین پیدایش است. این گاو رو ا ایو دیتا یا ایودات بعدش یا اواکدات در متون زرتشتی ترجمه می نخستین آفریده یعنی نخون چیزی که اهورامزا آفریده است این درست نیست معنی نخستین پای پیدایش از از اصلی است که در ماه در در خوچه ای که در زهدان ماه هست این این چیز این در این در اینجا میبینیم که این گاوه نخستین پیکریابی مجموعه به هم پیوستی جان هاست. در یزان شناسی زردشتی کوشیده میشود که حتی المقدور این گاوه نخستین به مجموعه تخم‌های گیاهان خواسته شود ولی در اصل تخمه همه گیاهان و جانوران و انسان ها بوده این نقطه خیلی اهمیت دارد چون بین اینها تمایزی قائل نیست این امتیازی را که به انسان در اجان نوری داده شده است در اینجا داده نمی شود طبعاً یز دانشناسی زردوشتی می که از اندامهای او فقط گیاه برویند اون هم سپس پس از مرگ و این باز ضد فرهنگ اصلی ایران است ولی از همین ها نیز می توان راه را به اصل گشود. از میان جگر این گ گوش،, گوش در اصل معنیش گوش خوش است. از میان جگر این گوش این مجموعه جانها ها بر روی زمین که فرخزاد فر هم را میده میشده است. از اگر به کتاب های لغت مراجع کنید یکی از معانی اصلیش جوانهای برگ اولی است که از تخم بیرون می آید. حالا از میان جگر این گاو که البته یعنی مجموعه همه انسان ها راسن و عویشن. عویشن بیرون می آید می روید. از میان جگر جمله این است از میان جگر راسن و آویشان برای بازداشتن گند اکومن و مقابله کردن با درد اکومن که خدای پرسش و شک و چونه چرا بوده است در اصل همان بهمن است ولی یزدان شناسی زردشتی بهمن را که بر ضد اصلش این همانی با نخستین روشنایی سادره یا سپیدی از اهورآمزدان میدهد که همه آگاه هست و دانش برپایی چون و چرا را نمیپذیرد طبعا از این چهره بهمن کمال دیو ساخته است که ما به عنوان اکوان دیو در شاهنامه می بینیم این همون اکومن است که اصل سؤال و پرزش و شک هست که اساس تپکر می باشد این رو با بوده است با شناسی زردشتی چون که ناتازگار با اسلام هست لب... لما و من نباید کرد حالا بوی خوش ببینید این برزده چی گند اکومن میاد این بوی خوش معمولا هم بیان مهر است. هم بیان حس کردن و شناختن است اساسا در پرهنگ ایران به معنای شناختن با حوی حواس بوده است گند اکومن یعنی بر ضد چون و چرا کردن و شک کردن است و درست با همین حرف ساخت فاش ساخته می شود که جگر با بهمن کار دارد ولی راسان و آویشن این همانی با کدام خدایان دارند؟ این را ما باید میدانید این یک نوع یک نوع جنایی است یعنی این جلو، ادیانی که بعدش آمدن اینها را پارپوره کردند و این واجه ها را به اندازه از هم دور کردند که کسی راه به اصل نبرد ولی ما باید این پل بزنیم این واجه ها را از اینجا و اونجا گرده هم بیاوریم و میبینیم میتوان در, در آخر به اون مفهوم اصلی رسید مقصود از گاب نخستین که گفتیم اعی و داته بوده است که به معنای نخستین تشخصیابی و پیکریابی است نه به معنای آفریدن به معنای یزانشناسی زردشتی این گاب نخستین مجموعی همه جانها و همه انسانها ها. حتی در سود خود زردشت در گاتا به همین معنی گرفته می شود و طبعا در جان هر انسانی از جگر همین راسن و می رود. راسن در عوستا اور و سناست. که به معنای تخ و زهدان یا است که از آن همزاد و جفت یعنی جیمن یعنی جی یعنی جیم پیدایش می‌آمد. نام دیگر این راسان جناه است. این همون واجی بیناست. راسان جناه است. این یعنی واجد در اصل بیناست بوده است که تبدیل به قوناس در ترکی شده است و همچنین تبدیل به گناه در امروزه در پارسی شده است. شناختن این تحولات پقراد مهم است قوناس به اختران ماه و پروین به جدوار که ساتریوس و مخلص الارواه هم میگفتن و من بعدا درباره اینها مفصل صحبت خواهم کردند. این قوناس از این اختران ماه و پروین منظور نخستین مهر و عشق خوشی خوشه پروین با ماه بوده است حلال ماه زهدان آسمانش مردم شد خوشه پروین تخم های همه هستی و از این جهان پیدایش میابد این مفهوم آفرینندگی آنها بوده است بنابرای بنابرا تصویر آنان گاوی که در همان حلال ماه یعنی زهدان و آسمان به پا خواسته است و جوانه کرده است که گفتیم اسمش فروخ و نهالی شده است به زمین افشانده و کاشته میشود. ببینید مفهوم کشتن و مشتن از اهریمن نیست این روایت زردشتی از این است و اصلا بحث اهریمن و زدن زخم نخست این گاب که در شناسی زردشتی متداول است نیست به عبارت دیگر تازه جوان زدن که نامش هن... چنان که گفتیم فروخ است در زمین افشانده و قرض می شود و جوانه این نهال در زمین کاشته می شود مثل که امروز در دارستان در نهالستان این تخمه کاشته می شود بعدش به جای های دیگر برده می شود همین مفهوم را داشته از در شکم ما این تخم اونجا جوانه میزند زند اون این نهال جای دیگر در روی زمین در همه تنها کاشته می شود ابزایش احریمن الهاق احریمن که با زدن زخم و آزار یعنی همه جان‌ها را اول می‌کوشاد اول از مرده اینها پیدا شود خوب در نظر بگیرید این مفهوم اینی که اول مرزن بعدش به پا خواستن این ایده زرتشتی است این در فرهنگ ایران نبوده است این ابزاح اهریمن و این زدن زخم که آزردان باشد این مسئله پیکار جهاد با اهریمن میاد و همینجا به کلی ایده با ایده اولیه ای ایران که مهر بود است فرق دارد یعنی اینجا جنگ با احریمند شروع می شود حالا افزایش اهریمن که با زدن زخم و آثار گاب یعنی آزار همه جانها و از کشته و مرده جانها و انسانها پیدایش می سازگار با آموزه زر است ولی بر ضد فرهنگ ایران است و این واژه هنوز این واژه قوناست هنوز به شکل قوناق در گویش های مختلف به معنای مهمانی دارد در مولوی قوناق میاد همین واژه است این نخستین مهر و عشق کیهانی این ویناست در یزدان شناسی زردوشتی درست معنای ضدش را پیدا کرده است و شده است اصل گناه و بیناسیتن به معنای گناه کردن و مرتبی مرتکب گناه شدن و بیران کردن و آسیب رسانیدن هست گناه شده این یعنی چی؟ یعنی اون مفهوم عشق و مهر که در اول فراگیر بود و از اون همه چیز آفریده میشد، این به کنار نهاده شده است. از این به بعد خاست اهورا مزداست که آفریننده میشود. از این روح هست که این اون مفهوم عشق که همه چیز را پدید می آورد مه اون به, به،, به کنار نهاده شده است بعدش وعز از مزدان می شود این فرق دارد با ایده ای که عشق و مهر اساس پیدایش است حالا چنانچه در گفتارهای دیگر دیده خواهد شد که کین واجه کین امروزه در اصل معنای سرچشمه و اصل مهر است و وقتی امروز چی پیدا شده است؟ معنای دشمنی و نفرت و انتقام و حسد و جنگ به دانداده شده است ببینید شناختن اینها شناختن پرهنگ ما این تحبولات داده شده است در مبارزه با افکار این کارها رو میکنن بهترین راه مبارزه همیشه با هر اندیشه نیکی آن است که معنای اصطلاحات آن را وارونه میسازن چنان که ما خود ما در همین منقلابی که انقلاب مینامند در همین شاهد بودیم که معنای آزادی و حقوق بشر و و اینها و جمهوری فلان و فلان همه وارونه ساخته شد به همون واجه ها معانی وارونه داده شد البته در این کار چندان موفق نمیشوند چون معنای اصلی این اصطلاح به گونه‌ای دیگر در زبانها و گویشهای همسایگان باقی می اینها فقط در اون محبتی که گسترهی که نفوذ دارند می این اصطلاحات را معانیش را عوض کنند اما برای این خاطر این گویشها و زبانهایی مثل پشتو و کردی و سایر زبانها بسیار مهم هستن چون که اینا معانی را نگهداشتن که زرتشتی که ایجادشناسی زردشتی در پهلوی و در فارسی امروزه زدوده است که اینها در این بخش چیره بودهاند در اینجاها زدوده است این از گویش ها برای این نیست که ما واژهای دهات و ماهات رو جمع کنیم و پولان نه نه گویش ها برای ذخیره بزرگی است از این بینش ها که در فارسی از بین رفته است یعنی این معانی که اصلی که به واژه ها داده می شود در اونجاها چون که چندان زیر نفوذ موبدان نبوده است چندان زیر نفوذ اخوند های نبوده است برابری این در اینجاها مانده است این است که تحقیقات در این گویش ها را نباید چنان چنان چه امروز متداول است دنبال کرد بلکه بایستی با کمال جدیت به اصل چون که اینها یاری میدهند. به فرهنگ ایران حالا این نام دیگر همین راستن چیز زنجبیل است که در پهلوی سنگی پل است. حالا از همین واژه سنگی سنگ در اولش میتوان اختران و امتزاج و اتصال را دید همین بیناس با تلفظ جناح در عربی همه معانی را نگه داشت ما خیال میکنیم در عربی فقط بعضی از این واجه ها مانده است نه در عربی جلوتر عربها و ایرانه ها با هم آمده شد فراوان داشتن پیش از آمدن محمد و این واجه های فوق العاده زیاد از فرهنگ ایران در با آنجا رفته است و همه بعدش ریشه های عربی از آن ساخته شده است و این امروز هم زبان همین زبان عربی به ما برای بازیابی این استراحات قدیم بسیار کمک میکنن چون که در اونجاها چیزهایی از همین واجه ها مانده است که در فارسی از بین برده شده است. همین ویناست با تلپوز جناح که در عربی در همه معنی را نگهت جناح به معنای ذات چیزی نفس چیزی گروهی از هر چیز است و همچنین به معنای راسن نام دیگری هم دارد به عنوان فیلگوش بیخ این فیلگوش این گیا لوف کپته می شود به این به این فیلگوش لوف کپته می شود و بیخ آن را به عربی اصل و لوف می نامند این لوف زیاد دور نره به هم کلمه لاب است یعنی پیوند همزاد و در برهان قاطع دیده می شود لوف همون پیلوش و دو نوع دارد یکی کبیر و صغیر و کبیر را به عربی اینجا مهم است به عربی شجرت تر تنین میگویم خون سیاه بشن تنین است در درفتم شیرابه دارد خوب خون سیاوشان چنان دیده خواهد شد همین دم همین تنین است که ما را آتمان هم هست خوب معنای دقیق خون سیاوشان که چه اهمیتی در داستان بعدش امام حسین بازی کرده است، از همین جا ما گام به گام خواهیم تهمید معنای دیگر لوپا معربش قنتوریون است این قنتوریون ماجهی کنتاور یونانی است که سرش انسان است تنش اسب است در پارسی این را نیم اسب میگوین که دوم را آسمان است این مار آسمان رو که گواز چهره میگویند این دومش سرش دو پیکر است دومش مار چیز نیم است و حالا خوب یا و این را خون این مار را خون سیاوشان میگن و دم یا خون این تنین چه سرش دومش همون خون سیاوشان است و بعضی نیز به این لو... چیز پیلگوش هیور عالم همیشک که بوسان افروز است و این گل سیمرغ است میگویند یعنی به این لوف بله حالا لوفا به همین هیول عالم و همی... ه... یا همیشه کنم می یا بوسان افروز و این گل سیمرغ است که اصل لوفا گفتیم همزاد معنیش معناش مهر است همون لا البته فیل گوش هیچ ربطی به گوش فیل ندارد بلکه گوش همون گوش به معنای خوشه جانها را دارد و این پیشوند فیل همون پس، پسوند سنگ و پیل زنج فیل است و میوه سر را هم جاوزول فیل میگویند که اینها در اصل پی، پیرو بوده است شده است فیل در همون در هندی به گیاه پیجه و به نجم که پروین باشد و به معنای تخمون بید یا یعنی همیشه چه همیشه سبز است پیل میگوند در هندی به این پیکچه پیل می یعنی عشق خوب متوجه این پیرو به خوشه پرونده هنوز در کردی پیرو می پیرو حالا در فارسی به و کوهی پی پیرو می که نام دیگرش اردوج یا اردوجاست که خوشه ارتا وج یعنی خوشه ارتا خوب از اینها البته لوف همون واجه لبلا است که لاولاب باشد که ببینید همه اینها معانیش با مانده است حالا ما از اینها خوب متوجه بیشتر متوجه به معنای راسن میشمیم به پیچه یا پیچک یا مهربانک چی گفته می شود که در کردی داقنا می می شود پیچه گفته می شود که همین روف باشد حالا رو ایدن از چیزی یا از تخمی چون که این راسن و آویشن از چی می از جگر به معنای آن است که همگوهر هست و آنچه یعنی جگر و راسن و ابشان هم و آنکه بلقوه در آن نهفته است می شاید و می نماید یعنی حقیقت آن چیز در صداقت پدیدار می شود این البته مفهوم راستی و عشه بوده است درست این پیکریابی بهمن است بهمن اصل نادیدنی و ناگرفتنی است یعنی اون چیزی که بلقوه هست که در ارتا و در سیمور یا راسن پیلگوش دیدنی می شود و چهره می گیرد. اون چه است بلفعل می شود. این در, در داستانهای ما این قضیه در داستان بهمن و هما گفته می شود. که هوما دختر او با او ازدواج میکند. کند. ما پوری از دید اسلامی این چیزی را چیز خیلی زشت میدانیم. ولی این تعبیر این تحبول بهمن به هما بوده است که دختر برای خواهدن که مفهوم کنن میگفتن هما دختر بهمن است در حالی که این تحول بهمن به هما یا سیمر یا انقا و گغنس اینها پشت روی یک سکه بودن تحبول از یک چیز به چیز دیگر همه نام های این اون خدا هستند. و این بهمن است که تحول به هما یا سیمرق مییابد روییدن یا رنگیدن یا وخشیدن اینها همه معنای روییدن دارد چنین تحولی بوده است اینها را در اصل همون افتار و در سانسکریت اوتار میگویند که بعدش به واژه ابدال ما تبدیل شده است و به واژه افتری و فطره کلمه در عربی در اینا اینا برای دانستن اینها برای شناختن پرهنگ ایران فوق العاده مهم است چون که هر چیزی را در زبان اصلیش می شود فهمید در خوشه پروین ستاره هفتم که است همین بهمن است و شش ستاره مر... مرعی دیدنی که خوشه ارتا باشد و همون ششک هست که پروین باشد این تحول اون ستاره در میان به این رو، را... یعنی تحبول تحولیابی و چهره بهمن در ارطهای خوچه خدای ایران سیمر بوده است حالا این خوچه ارتا یا پروین که در زهدان حلال ماه قرار می و قوناست یا اقتران می شود حلال و ماه و ارتا با هم عشق می برزن. از این عشق نخستین همه چیز در جهان پیدایش میابرد و این همون گاو نخستین و داتا که فرخ باشد نخستین پایش و زایش میروید حالا چنان که گفتیم فرخ به نخستین برگ هایی که از تخم بیرون میآید گفته می حالا برمیگردیم به گیاه دوم که ببینید اینها درست ما را آشنا میکنند که در پشت این نام گیاهان چه خدایانی این گیاه دو که از جگر میروید و آن آویشان است این را آویشان به گیاه های مختلف گفته می شود که از یک که رده هستند اسمای مختلف دارد ولی این گیاهان که تحت نام آویشان عرضه می شود همون تیموس یا تیمیان در زبان آلمانی است که از جمله سه سنبول یا سی سنبول گفته می شود یعنی خوشه یعنی سه تا خوشه از همی جا ما متوجه میشیم سه تخمه سه خوشه اینها همه همون سه تا تایی و همون سیمر مرخب می باشن و آب این آبیشن شیرازی چی هست همون مرزنگوش است مرزنگوش چیست ببینید اینا را همه را بس کی از هم جدا کردن کسی تا کسی پی به اصل نبرد ولی ما اینها وقتی کنار را هم گذاشتیم میتوانیم اصل را پیدا کنیم مرزنگوش است که به ارتای خوشه این همانی داره با, با ارتای خوشی و چنان چه در بندهش میشود دید و چنان چه میپندارند به معنای گوش موش نیست آخر این را خیال از این واژه مرزنگوش یعنی گوش موش درست همین مرزنگوش این الهدهد نامیده می شود یعنی چشون هدهد و خود هدهد هوتوتک درست یعنی نایبه یعنی ارتا،, یعنی ارتا خوب ببینید این باجه ها را که کسی پیدا کند و مواجی مرزنگوش در اصل امرگوست بوده است و گوس همون خوشه است. یعنی در در یونانی و لاتین باقی مونده است که خوچه که امر همون که خوشه امر خوشه مر است که نام همین خداست مر مرسین حالا مرس پنتا دکتر موبد سهراب خدا در کتاب پزشکی در ایران آویشان را با روز بیست و نهم این همانی میدهد حالا ای روز این روز اینه اسمش مرس, مرس پنتا یا مارس اینا ما خیال میکنیم این با کلمه مار ما پوری تصویر حیوان زهرنا زهر داریم در صورتی که این مر معنای اصلیش چرا بارها گفتم که اصل دوستی و مهر و زناشویی هست این روز بیست و نو خیلی مهم است این است که به نام رند در اصل رند بوده است برای بر میان ما مشهور شده است این روز بیستو... این مرسپند ها چرا اصل دوستی و مهر بوده است و چرا ایرانه ها خودشون را رند می نامیدن چون که این خدا دو بون دنیا را به هم پیوند میدهد که یکی رام روز بیست باشد و بهرام روز سیان باشد و وقتی از این پیوند این دو زمان و جهان تازه پیدایش می هد. یعنی عشق که مرس نام دیگر سیمور بوده است یعنی از این ستا رام سیمور و بهرام این که سه روز آخر هر هستند زمان تازه و جهان تازه پیداش میاد گیاهان دیگری که با همین خدا این همانی دارن با همین خدا صنها یک گیاه باشیم همانی داشت گیاه های مختلف یکی برگ بو بود یا درخت قار یا نرد است که پردوسی آن را خون سیابشان میخواند که در شعر پردوسی آوردم و بر این درخت برگ بو یا قار که نرد نامیده می شود سندل هم نامیده می شود بر این درخت در شاهنامه سی نشسته است و ابوریحان ریحان در اطپیم در جگر همکاری مریخ و زهره می بیند. یعنی بهرام و خرم را جفت می داند. در واقع این بهمن است بلغوبه که در اون تخم ناپیدا و ناگرفتنی نیست و تحبول به چی می به رام و مرس و بهرام یعنی ستای یکتا می شود سه خوشه می شود رام و مرس یعنی سیمور و بهرام که انصر اولیه هر انسانی هستند این سه خدا انصر اولیه هر انسانی هست عرج انسان رو از اینجا می شود فهمید که خدایان انصر اولیه هر انسانی هستند از رو راسن و آویشن از جگر یا پیلگوش و مرزنگوش از جگر به خوبی می توان که خونی که از جگر پیدایش می آبد، این همانی با بون آفریننده جهان دارد که عشق نخستین و اختران ماه و خوشه پروین و و آن به ارتا دارد که رگیست که خون در آن جاریست این ارتا رگیست که خون در آن جاریست و بهمن نه تنها اصل خرد است بلکه اصل بزم هست یکی از مردم او را بزمونه میخوندن حالا این خرد شاد و نهفته است که تبدیل به قضای راستین با آتش و مهر به اصل پروردن و پیوند همه تن با هم و اصل همه اندام دانایی ها یعنی حواس میگردن من تا اینجا تا اندازه‌ای گوشیدم که نشان دهم که این جگر این همانی با چه خدایانی داشته است و درست از اینجاست که خون اصل آتش در بدن باشد و اصل باده باشد و یعنی اون چیزی که میانگیزد و شاد میکند این در تمام تن جاری میشود و این تصویر است که مفاهیم بسیار مهمی را در بر دارد و بزرگترین فلسفه زنده ایرانی را ایجاد میکند